بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والشهداء المرسلين وأولي وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمة الله وبالقدر المقدور أيق فإنه جعامة عقد الدين والدين أفيحه يكذّر ثان إيمان إيمان بقضاء والقدر تنسى الحديث عبد الله بن عمار عبدالله ابن عمر وقتی بهش میگن کسانی میان میگن که خدا نمیدونه فرده چیه و این الامر اونو یعنی تازه حادثه تازه در رقم میده خدا آبانی نده به نثبت عبدالله بن عمر رو حد میشه بگه اعلم هم انی بری امی انی بری ام منهم انهم براعا ام منی بغضش نسبت نثبت اونها اعلام بیکنه من بغض اونها رو درم از اونها بری هست اعلام بی کنه بغضش بچادری کہ درباره خداوند خدا وعد کرد و گفت خداوند نمیدونه از آینده از آینده خبر نیست بعد میاد بیویت که عمر بن خطاب قدرا بیان گفت که در مجلسی بودم رسول صلی الله علیه و الیهم نشسته بود جبرائیل مدظلو به نشست و پرسید اسلام چیه بعد پرسید ایمان چیه و گفت درباره ایمان الایمان انتو من و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر و القدر خیره و شره مباد ایمان به قدر ایمان به قدر داشته باشی، من علم سابق خداوند و تقدیر سابق خداوند بر مخلوقاتش. 50000 سال قبل از آفرینش، خداوند قلم را خلق کند که تمامی اعمال بشریت را صحف بکند و بنویسد. صحف بنویسد. 50000 سال قبل از آفرینش، اولین چیزی که خدا خلق می‌کند قلم. حالا اختلاف هست اول قلم بوده یا است. ما نمیخوام در تفاصیل جزئیات یا در جزئیات عقیده بریم. ولی که اون چیزی که جزء اولین های خلقت بوده خلط بوده که قبل از آفره قبل از این آسممون زمین وجود بیاد خداوت اون را خلقت میکنه اون چیزی را خلقت میکنه و مییس اون خل. این قدره و بالقدر قدر مقور این داشته باش شد داشته باش به مقدمت شخص داشته باش. مقدره شما این بوده که الان اینجا باشید تو این حاله باشید. مقدر شما این بوده. مقدره شما این بوده که در چه ساعتی میمیریید؟ و در چه ساعتی به دنیا بیاد دیگه جنین روح در سمیده میشه اونجا هم خاص دوباره تجدید میشه از لوح محفوظ میاد به لوح خرشنگان و تو با عجل رو اینها نوشته شدن از قبل بوده و سپس برای ملائکه سال به سال روز به روز تجدید میشه اینها تقدیرات مقدرات به هر قدری و مقدوری که ما شده بر حسب موازینی که خدا گذاشته بر حسب ترتیبی که خدا گذاشته از لوح محفوظ گرفته تا لوح فرشتگان همونطور که ابن عباس میگه درباره بحث لوح محفوظ و کتاب فرشتگان میگوید اون چیزی که پیش خدالله در لوح محفوظ همه چیز نوشته شده حالا یک سال شبه پیش میاد رسول الله عليه وسلم من لا يرد القدر الا الدعاء قدر ربنا مثل ما جاء الدعاء قدره يرد يكون شلون يرد يكون بعضا مشو قدره شو قدر شويه قدر سيصابتي يعني خدا مقدر كرده همه شيزه بشه بس شو دعاش ميكن بعضا هي خلي راحت نييخاط نياس بس يزدان تفكر زين يا خدا نوشته همه درسته نوشته فلان شهر مقدر بوده فقیر باشه بعد دعا می‌کنه داد اگر خداوند اجابت میکنه، خدا بهش میده اون چیزی که تقدیر بود که فقیر باشه بعد دعا می کنه. دعا می‌کنه خدا غنیمت خدا غنیمت می‌کنه نمی‌کنه گفتن نمی‌کنه قضیه خیلی واضحه ولی کن وقتی که در اظهار نظر باز بشه چطور چه گونه مگه میگه میشه این ها دیگه خزاباته، باب خزابات درباره علم خداوند. اون چیزی که ما یقین داریم، این که خداوند از آینده خبر داده و خبرش حق هست. تو ما نسبت به علم خداوند به مقدرات یقین داریم. علم بیاجوج، حاجوج، تجال و خیلی از چیزها، از نشانهای کوچک قیامت از نشانهای بزرگ قیامت في زي روحه مثلا اون واتصورش اینکه در مدینه میشه که نورش در بغداد دیده میشه یا همون بحثای که میزننسا اون کاسیات العاریا سفن الاهلنا لم ارهم یا ستون بين يدي الساح شيش شيزات ان بين في ساعه سنه قیامتا که روحا هم بین قیامت و بین من موتی ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ياخذ فيكم كطعاس الغنمي به چیزایی دیگر اصلا یاد میکنه همه اینها ها روح کنه. بیت الممزه است. یا بحث غلب شدن رومی ها بر فرس بر فرس بر روم. اینا همه. و بعد مسلمان ها بر ایرانی ها. اینا همه از قبل خداوند در قرآن و دست کنه از اون مسائل یاد کرده چون علم سابق داشته. فا انهو دعامت عقد الدین. یکی از ارکان ایمان انتو بنا قادری فرید و شرف فرید و دین و دینه و در از دین تو نمیتونی دین خدا رو به وسعتش درک بکنی اون چیزی که خدا به تو مکلف کرده از جمله قضا و قدر نمیتونی همه چیزشو درک بکنی اون چیزی که مهمه در بحث ایمان قضا و قدر که بعد همیشه گفته بشه علم بشهار رق الناس يمان علم علم صابق خداح علم عذري. كخدا بأن ياد ميكنه. في خدش. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور فضلني يا علمو نسبت بقدش علمي ده بس يعني ميدونه بغير خدا نميدونه ميدونه اندانهي كه روی زمين ميوفته اندانهي كه ميريو كي ميريو چه وقتي و چطوري و چي گونه و چه قد خدا مقدر كرده چقد بارون بباري ك نميران چقد علف بریه که نه نمیرن اینا همه مقدراتی که است که خداون نازل میکنه دوویش کتابت و كل شيء فعلوه في الظهر وكل صغير وكبير مستتر صغير وكبیر بزرگه کوچیکه سات شده حتی در نوشه محبوس من فقط یعنی قبل یعنی فقط اشاره میکنم یعنی دیگه در تفاصيلش نمیرم یعنی فقط یه قای سایجو کنم در حد بزگ بکنم که سری فما بحسه من بشير. كتب الله, ال... الله صلى الله عليه وسلم كتب الله كتب المقر... مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة على الماء. من قبل أن ينجم خضابا رخ القدم بتمام مقادير من وسيلة. حديث صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم. إن الله حديث دجال در صل إن أول ما خلق الله القلم. قال له اكتب فجر بتلك الساعه بما هو كائن إلى يوم القيامه شيء فقط كان يكون قلما تو قيام الساعه نوشته تمام ان مقالي تمام ان الشيء اللي بخاطره سابعين ركن من اركان الايمان بقضاء وقدر مشيئة الخداونده وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون الا ان يشاء الله يعني الخداون مشیعت داره هر وقت هر که بخواد هر چیزی که بخواد میشه یعنی خداوند گفته اینها را بنویسی. علم داشته به اون چیزی که میشه بعد تا قیام صاحب. بعد گفت قلم بنویسی. بعد از اون الان قضیه خلق و ایجاد میخواد رخ بده آسمان ها و زمین این آسمان و زمین چطور طرق قد میشن با مشیعت خداوند، نه با مشیت شما شما اگر مشیعت دارید اگر میتونید این دیمان رو بردارید چون خداوند خواسته چون این قدرت رو خدا با مشیعتش با خواستش با خلقش آفرینشش در سما ساخته با ما تشعون باید ایمان به مشیعت خدا داشته باشید اگر خدا نمیخواد که من این رو بلند بکنم نمیتونستم یکی از مشکلات اعتقادی که پیش میاد متاسفانه در بحث اعتقادی در همین خللی که وارد میشه در بحث ایمان به قضا و قدر که بعضی ها که میگن پاکستان و هم میرن که تشکیل میشن چله و نمیدونم چهار ماه برمیگردن با عقیده جبریه با عقیده جبریه برمیگردن میگن چاقو نمیبوره از در چاقو نبریدن، اون کسی که میبوره خداست اگر اعتقاد باشه که چاقو میبوره تو مشرکی چرا تو برای خدا قرار دادی خدا میگه من تو میگی تو و من تو میگی خدا خودت اون چوبو رو را اون مشیت خدا را به چاقو و خودت نسبت میدی آتش نمی سوزنه ابراهیم سوزن ابراهیم میگه تینس با چاکو سر سرپسرش رو ببرد استدلال این وقایع میکنن در چی در این که ما مجبوریم ما مثل یک شاخه درختیم که این اینور اونور حرکت میکنیم اون خداوند است که میبوره اون خداوند است که میسوزه ولی شک نداریم ولی خداوند نفی مشیت از ما نکرد نفی قدرت از خلقش نکرد نگم چوبو نمیبوره معجزة شو تنبوري؟ ندق قاتش نمي صوت نمي صزنات. إن الله لم ينزل داء إلا نزل دواء. وإن الله لم يجعل فيكم حرم عليكم من دواء سبب مسبب درس. الان أصلًا صلاة الصبح يفرمايان خدامة مرض إيرادي نيووردن مجرد دواء يبرد كذاش ده دواء المرض دواء بس لا اثبات دارویش می کنه باقا نمی کنه شرک کسی این این می این شفا ملیدی میده. ده؟ بله شافی خداونده بلی که با سبب با وسیله نفی مشیعت نگرد از اسباب. شما مشیت دارید خدا هم مشیت داره و ما تشاؤل الا یشه الله مشیعت خدا سابقه بر شما مشیعت خداوند یعنی خدا اگر نخواستی بود که شما این کار رو بکنی نمی کردی. خدا این قدرت کونی را به شما داده، کونن به شما این مشیعت و این قدرت رو داده شما دیگه نمیتونید نفی این قدرت بکنید یک سری مشکل کسانی که در تناقض اعتقادی می مشکلشون میدونید رو کجاست مشکلشون از عدم درد و تفریق بین امور جبری و امور, مق... امور قدری امور جبری من با این شکل قیافه پدر مادرم فلانی از فلان منطقه اختیارش داشتن نداشتن شکل قیافم اینطوری باشه قدقوارم اینطوری باشه من هیچ اختیاری پیش ندارم. یک سیری امور گفتم خارج از بحث عدل یعنی این چیزی بدینیاتی که ما میدونیم یک سیری امور ما مشیعتش خدا به ما داده مثل دستم بالا بکنم دستم این بر بکنم اون بر بکنم کسی که بگه تو مشیعتش نداری دیونه است آقل نیست اون چیزی که ما خارجمون من هست، اینی که خدا اینقدر این خواسته که من دستم بالا بکنم یا پایین بکنم پس این دوتا به هم دیگه رب دارن مشیعت خدا و مشیت انسان هرگاه انسان اومد این دوتا رو به هم قاطی کرد بین امور جبری و امور مقدری اونجا هست که در تناخص میسته و میاد یا قدری میشه میگه که اصلا خدا نمیدونه و من خادق اعمال خودم هستم مثل معتذره خدا فاره نیست یا میاد مثل اشاعره و ماتریدیه میگن که چی؟ میگن که نه ما کاسبیم ما فاعل نیستیم فاعل خداونده خداوند است که داره بالا میگونه با این مییاره این ما نیستیم ما مشیت نداریم خدا نفی مشیت نمیکنه از بنده و ما رمیت ادرمیت ولكن الله رم آیا در این آیه نفی رمیت طرف رسول الله نفی رم نیست نذیه توفیق رمیه یعنی به هدف خورده رمیه چون اثبات رم رو کبر الرسول اند رمیت تو رم کیا دی تو طاقت کیا دی اگر من پرتو کننده نبودم اگر رسول الله پرتو کننده نبوشه دیگه حساب کتاب روش نگرا نه واسه قاتل بشه نه واسه بشه اگر خدا هستی میکشه پس چرا بنده خدا عذاب ببینه به خاطر قتل چرا قاتل معاقب بشه پس این امور هست که چی انص نه باید با یعنی نباید در تناقض بیفته و بیاد دیگه حالا بیشتر از اون چیزی که خدا بهش درک داده بیاد درش دخالت بکنه بحث بعدا دوباره داشتم شروع کنم بکشم برات این چرت و پرت رو بگم چهارمین رب الایمان بالایجاد والخلق الحمد لله رب العالمین خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكیل والله خلقت بما تعملون خالق خدا خالق همه چیزه ما و اعمالمون همه چیز خالقش خداوند است اما یک مسئله که مهم هست در بحث قضا و قدر پس الان چهار تا شد اولیش علم دومی دو کتابت سومی مشیئات خلف و چهارمی خلق و ایجاد آخریش که معمولا بهش میگن قضا به قسمت آخرین میگن قضا و اونها میگن قدر یعنی علم خدا چون علم و کتابت اینا همه سابقه بر خلق و آفرنش. علم و کتابت و مشیط سابقه بر بر آفرینشت و بعدم میاد مرحله خلق و ایجاد و آفرینشت کلان حی داره روح میده آفرینش کسی و کسی دیگر داره به دنیا میاد یکی از مسائلی که ما باید بدونیم در مسئله قضا و قدر بحث انواع اراده خدا مشیت مشیط خدا ما اراده خدا داریم اراده کونی و اراده شرعی اراده کونی این اگه کونن خداوند مقدر کرده ما اینجا باشیم. کون. کونن. لازمش این نیست که در کون هرچی رو میده خوب باشه. لازمش این نیست که خدا دوست داشته باشه. این مسئله رو چرا میگیم؟ چون معتذره به شاعر اراده شنی یکیه. یا میگن خدا اراده داشته یا میگن نداشته. نه اراده میکنن یا اثبات اراده مطلق ما فرق میزنیم بین انواع اراده دست خدا. ما میگید یک اراده شرعی یک اراده وقایی زنیتو به علیکم این اراده فرق میکنه با چی؟ با اون اراده اما تشاؤن ایدن یه شهر با اون اراده فرق میکنه با اون مشیعت با اون اراده فرق میکنه چه فرقی داره؟ در ارادت کونی لازمش محبت نیست معدد گفتن چون خداوند ظلم انجام نمیده نفی ظلم از خدا کردن گفتن چی اگر ما بگیم خداوند اراده مطلق داره اراده داره پس زنا هم کار خداست پس دوزی هم کار خداست چون خدا از ظل مبرراه هست و ظل یک قضیه عقلی هست عقلا بر خدا محاله پس خداون اراده نداره تساسود فکری در که سبب شد موجب شد چی؟ اراده رو از بکنه نفت کنه اشعار برعبس این they اراده a به خدا نسبت دادن. حتی فعل got this خدا they این کار a خدا problem این کار began فرق way to yourselves this is the way you would do for one another the Holy Spirit came in Heaven and Heaven and Heaven and with Heaven and in Heaven it was not a lie who were among the same forms in this word let me balance this streaker with no one do not understand somehow. and lets که لازمه ای ارادت ارادت خلقی جاست محبت نیست رضایت نیست که معتازل اومدن باته و جور به اون نسبت زر از خدا نفت بکنن و زر رو نفت کردن و اومدن اراده رو با و جور به اون نفت از خدا اراده هم نفت کردن نا اون شر یک شر نسبی هست به نسبت من و به نسبت خدا فرمی کنه ابلیس به نسبت من شره چون به من بس نسمی کنه که من به هوا و هوشم باشه و برم فعلاً جرم و انجام بدم ولی برای خداوند خلق ابلیس فش شر نبوده، شر محس نبوده. با خاطر همه رسول در دعای تهجیتی میگفتند و شر نیست ایلی. شر مطلق را هیچ وقت نباید با خدا نسبت بدهیم. چرا؟ چون اگر ابلیس نبود دیگه کسی زحمت نمیکشه برای اینجا جهات شرکت بکنه یا نمیمد نماز بکنه. جهاد دیگه پیش نیومد. دیگه وجود نداشت که باید جهاد بکنیم. دیگه کسی گناه نمیکرد که بدون خداوند ثوابه خداوند غفاره دیگه خداوند عبودیت نمیشود با اختیار چرا خدا اختیار بهمون داد اختیار بهمون داد تا اینکه ما با اختیار خودمون خدا رو بپرستیم با حب خودمون پس مسئله خیلی مهمی هست که این شر شاید به نسبت کتی شر باشه به نسبت خدا شر نباشه خدا خیریت میکنه. خدا نخواسته که زنا باشه ما رو خبر نکر نکرده که zina باشه که دزدی باشه قتل باشه خدا خلقت که هستی ما اولا ببس وما ما خلق جنه و نمسا یعبدون خیلیت در بوده هم خیلیت ما و تمامی مخلوقات دیگر خیلیت اونها را خواسته خدا بس شر خدا من اثبات داده نمیشه بلازمه اثبات این نوع قدر تقدیر جونی لازمه اش محبت خدا برعکس چیز تقدیر والله يريد یری دنی توبه علیکم این اراده اراده شرعیه دوست داره خدا شما رو ببخشه دوست داره شما اهل نماز باشید هیچ وقت خداوند شرقی که بر شما میکنه چیز بدی نیست که بغضش داشته باشه و بدش بیاد این اراده هست که چیه لازمش محبته خداوند اسلام رو دوست داشته که ما رو مکللت کرده بس لازمه این نوع اراده اراده هرچند که بحث گفتم فقط اسباب کی گفتم که ما بتونیم یک حضور ذهن داشته باشه در این مسئله که دیگه اینجا لزومن مجبوریم پاس بدیم به کتاب سر حده عبدالعز حنفی که اونجا مفصل درباره این مباحث صحبت کرده فقط گفتم اینجا از باب اشاراته فقط اشاره دارم می و سریع دارم عبور می کنم که دیگه انشاءالله بقی تموم نشد سؤالی که هم اینجا ای که از دوستان داره در بحث اجله اجل يكيه اجل دوتاس اجل يكيه إذا, اذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعة ولا استخدمون اجل يكيه اجل همه و يكيه فقد ميمونك اشيه تاللوح محفوظ نبي شده فلان شخص فلان واقع رخمي میده نجات مياه بها از اون واقع نجات مياه بها چیزی دیگه رفت میده و اونجا از اجلش میرسه چون اینجا بحث این پیش میاد حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرماین سلی رحم سلی رحم عمر را زیاد میکنه خب اگر اجل مشخصه چطور عمر زیاد میکنه بعضیا به خاطر فرار از مسئله تقدیر اومدن گفتن چی منظور رسول الله برکت عمر زیاد میشه نه که خود عمر زیاد میشه شیخ البانیر رحمه الله در رد کسانی که اینجنین تعبیلی رو میکنن میگوید این حدیث حقیقت داره بر وجه خودشه چطور حقیقتا سره رحم عمر زیاد میکنه چون نوشته خدا تا قبل سر رحم عمرش این خد باشه ولی چون سره رحم میکنه این خد عمرش اضافه بشه که قبلا ما من شرح دادم در ابتدای بحث مقدرات قال رحمه الله ولا لا تنكرن جهل جهلا نکیرا و منكرا ولا الحوض والميزانه انك تنصح ولا تنكر ان جهلا نكيرا ومنكرا بگرده مسائلك که بحث به ایمان ایمان بر می‌گرده ایمان به روز روز آخرت غلط تو من بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الاخر یک از بحث منکر بحث حدیث ابرام عادت حدیث شهادت ولنهاس کمیات رسول الله صلی الله علیه و سلام مؤمن وقتی که میخواد فوت بشه ملائکه میان با کفنهای بهشتی اگر گناهکار با کفنهای جهنمی میان به سراغش میهش و میکنن بعد اینکه روحش قبض میکنن میرن به آسمون ها به احسن اسماء الذي كان ينادى في و به تنیاض به نام صدا بعد خدا میگه اوتگو كتب عبد و کتاب اون شخص گناهکارو نمیدونم قبر، وقتی کتاب تبعدیتی سجین در فرود جهنمیام می‌نویسید بعد با اینش میارن در قبل از همونجا پرت میشه و وقتی که به قبر میگرده منکر و نکیر میام بر روی سرش بعد از اینکه روح تاب شد و میگه در قبر اند شد حالا شخص سوال میپرسه و اگر شخص در دریا قبر شد چطور رسول الله صلی الله علیه و به ما خبر داده در قبر اینجوری میشه دیگه در اونجا خداوند قادر بر هر کاری هون بشتره مون دف میشیم رسول الله یک وجوهش با ما گفتن علمشو به رسول رسوندن یک از وجوهش در قبل خوابونده شده روح رفته بالا دوباره برمیگرده با همون سرعت سرعت فرشتگان نفس سرعت ما میبرن روح بالا و روح دوباره میانن پایین روح هم کفن میشه چطور جسم جرم میشه میدونی. می کفن میشه چون با کفن و با ملائکه کفنش میکنن بعد دوباره فرش میگردن دوباره توی قبر اونجا هست میید صدای پای دمپایی ها میشنصبحی اینجا یاد میشه می صدا می نمیشته به صدای ما ها می صدای انسان میشنوره شهی قعبوری تمام سوفیی ها دربحث توسط به عبورینی که میت می می نمیشته به چیز می صدای پای دم اسمقر ان نعاد لی باد بروناند تا صدای پای دمپایی میشن نت ما؟ چرا از کجا میگی؟ شو خدا در دافان میگه انک لا ت الموت و ما انت به مسل من بودو؟ شو قصودي إن الذين تدعون من دون الله عبادنا جبوا تهم بحسب بطن سه عبادنا مثالكم مثل شمالي إنسان هم مثل شمال فدعوهم فليستجيبوا لعبادك لهم أرسل من بها فضلا رهبا أم لهم أهل يبتشون بها دستا أدير خاطب أم لهم أذن يسمعون بها قصرا مشن أم لهم عيون يبصرون بها ميتون بيبين أدركه أكلان ميتون يتجنون بيج إذا بيج ميتون ناصور امجادی. ناصره صور امجادی. چون خداوند این ثیقه، این ثیقه که صفه سنگداری دراست، انکار دار می‌کنه که این چیز نیست. بینه نه، مش نه. در نه؟ راه می‌دند، با دستش می‌تونه، به این عوذزه. خلاصا. هلو، سمع ما تجاوب. اگر ام بشنند، اگر بشنند. نمی‌دونه استجابت بکنه، نمی‌تونه حرف شما رو اگر بشنند یک بارم رو خدا. در قلیل رسول الله صحبت کرد با ابو جهل امسال اونجا رسول الله سلام خطاب میکنه به ابو جهل و ابو لهب و دیگران که کشه شده بعد عمر خطاب بهش میگه یا رسول الله اتقاتب اقواما لا يسمعون اقوامی که مرد شده بدن میشتم با صحبت میکنین قال يا عمر ما انت بقصع منهم الان الان تسلم الان یک معجزات الان یک قضیه خاصی نبر هر جایی بلکه اونها جوداله رو این قضیه خاص قران الله به خاطر همین این نصوص خاص قران عالع و همچنین قلیل بعد از اصل نص نص قران انك لا تسنموده چی میشه استثناء با ما جاء به استثناء وقتی که اصول فقه رو آدم خوند این علم دقیق رو آدم خوند دیگه میتونه بین نصوص جنب بنده اصل اصل اصل عام در برابر خاص اصل اصل عام چیزی در قران نمیشه بدن قالون جاهيكم أدنس الناس بس شرهم منو قبر سلم السلام عليكم هل الفبور سلام زعاص مجازات شهودا مدعين يكنا السلام علينا وعلى عبد الله الصالح مجا الله الصالح مش لما السلام شني دني مجا الله الصالح شر السلام الله عليه فرشته ای موکله که سلام شما رو به من برسونه همونطور که در زمان زین رحمه الله شخصی میاد قرار قبل رسول الله علیه سلام علیکم میه بیا سلام علیکم میه فلانی بیا چرا تا می قرار قبل سلام میکنید گفتم میگه میگه سلام کردم بعد چجوری من سلام بر رسول الله بکنم گفتم فلان و ما و بالذي بالاندلس ایلا لا توی تو اون اون که در اسپانیا اس ما فرقی نداری چرا چون فرشته موکله که سلام رب رسول الله صلی الله ابلاغ بکنه برید واسه قبل دادم بکشید فریاد بکنید آه و ناله هم بگید رسول الله نمیشنوه خداوند نفیه شنیدن از تمامی مردگان ما یک نص نداریم که رسول الله استتشاد بگه دی اکبر عدم وجود بر همه هست درسته انک لا تمامی موتا نمیشنونن حالا اگر دلیل اومده تو فرماید این دلیل دلیل نمیده چرا؟ چون که فرشته این موکله فرضم اگر ثابت نشه فرضم اگر ثابت نشه دیگه میمونه که اصل عام رو ما داریم ما استثنائی رسولاتا از اصل عام نیاز به دلیل داریم خب زندن در قبر شد در قبر نه در عالم برزه نه در عالم دنیا چطور مگر میشه مثلا به فضا خداوند میگه اعملهم ام لهم اذن و یسمعون و معقلا میگه میشه یک کسی مثلا بالای سقف الان نشسته باشه کلاس خودمون رو گوش بده یک کسی تخاب تخاب صدا تو خواب تو خواب خابیده چطور تو میتوی استاد تو برسونی بهش اینا از بحث عقل میگن از بحث از بحث ناس رسول ام مثلا میگه که یک صدای خاصی میشد نه در این مساله فتنیک میخواست كتبه الاريات البينات تسبع عدم سماع سماع الاموات عند الحنفيه السادات موضوع الوسيمي مثل قالوا ان هم تحقيقش كرده ده امال تيجي ميگه ان هؤلاء اونهايي كه اعتقاد به صبر مرده دارن حالا من هر چقد دلیل بيارم حاليشو نمیشه میگه من یک مسئله فقی بهتون میگم یعنی یکی از شما قسم بخوره من میرم فلانجا با فلانجا با فلان کس صحبت میکنم یعنی اگر ندیدنمیش قسم خب الان رست اونجا دی اون شخص مرد است بره رو سر قبلبه فلانی من قسم خوردن که بیام با حرف بزنم صلح بکنه باد. آیا صلح محصوب میشه؟ آیا قسمش قبول میشه ابرار میشه؟ نه قسمش ابرار نمیشه؟ عمل نکرده نه به ننظرره زن قسم یا هر سوول از این اباب میخواد باشه. میگه چطور شما در فقه میگید تو میت نمیشنه؟ به نظرش یا به قسمش عمل نکرده در پاب عقیده میگه میشنه؟ والله همین مسئله چه درباره رسول الله باشه و چه درباره غیر رسول الله همون چیزی که ما در اعتقاد داریم همون چیزا در مسئله اعتقادی داریم من قسا قسا میگم من میرم با رسول ص بعد میگم قسا میشنا نمیودات نه نازل بكونه بس من که در مکير حق میام برسال ملائکه سیاه دان و زرقا و طياره ای رنگ و آبی رنگ میام مرده و سوال میپرسن الان اینجا دنیای برزخی شروع میشه یا مؤمنه جواب میده ما دینو من رب من نبی جواب میده یا اینکه گناهکاره و کافر بیگه ها هن ها هن لعدر ها هن, ها هن لعدری ها ها میکنه نمیتون جواب بده اونجا هست که مؤمن درهای بهش باز میشه و روحش پرواز میکنه از های بهشتی میخوره و یا اینکه گناهکاره فیعتی ریحها و یاتیه من ها از و سمسمو میاد از ها و آتش های جهنمی در قبرش وزیده میشه میگه اعلی برزقه روح میاد در جسد هم جسد عذاب میبینه و هم جسد جسد میشه در قبر اگه مولا نزدیکش کما روح میاد به قبر به جسد وقتی که در جسد اومد اونجا که یا جواب خوب جوابات. جواب بد اگر جواب بد داد با چماق به سرش میزنن که تمامی مخلوقات غیر از انسجن میشنوند اینجا ضربه که میخوره بر روح تنهاست یا بر جسد تنها بر روح جسد بر روح و جسد اعتقاد داریم که عذاب بر روح جسد واقع میشه و اونجا وقتی قب باز میشه در, در درهای جهنم باز میشه درهای جهنم باز میشه اعتقاد داریم که بعد جهنم آتش جهنم بر روح و جسد و جسد.allah یک جسدی مثل فرعون جسدش باشه چی میشه؟ فرد در قربانی و ناروی عرضون عليها و دو ماشی بر جهنم میشن عرضه بر جهنم میشن. اما مؤمن مؤمن دو حاله یا شهید که رسول الله في اجداف الطير يعلق من شجره الجنه تاقدروني در پرنده ای خطوه پرنده مسخرشو مسخرشون میکنه که پرواز بکنه از میوهای بهشتی بخورن روحش و ارواح المؤمنین کب الطیر اونجا فقر اینجا کب الطیر مثل پرنده پرنده ای هستن که اونجا از میوهای بهشتی میخورن روح اثبات النعیم دره و, و همچنین جسد یعنی هم روح در خوشی و هم جسد چرا چون های بهشتی باز میشه در قبل هم جسد هم روح ارزتا در خوشی و در نعمت به سر میبرن این اعتقاد ما علی صحنته بله ولی جسد فرا شما گفتید ما وقتی برد درد شده جسد برد یا چیز دور را دیدن یا کتا امروز هست, هست. لیکن بحث عن فامونه. کی میگن بهش نمیدنم که خداوند در قرآن میگه یوم منو نجی که ببند الان برد ممیایی میکردن و این ممیا هفت میشده نمیدونم دیگه الان این بحث الان نجات یافته نیافته یا به همون دوران بوده همچنان هست برای ما تأثیر تو علم ما نداره فقط اون چیزی که میدونیم نفس قرآن که این بدنش نجات یافت این بدن هر شخص هم بخواد نجات بدید بخواد بدنش مومیایی بکنید هر کاری بکنید از جهنم خدا راها نمیتونید بیابید. مثل اون شخصی گفت من را تکی تکی بکنید بسو یو رضوٰنه علیها. یعنی تو آخر قیامت در بزرگ بود عذابش بکشه. میخواد بدنش رو مومیایی بکنه یا در سرپناه نجاب داره. پس منکر نکیر و نباید این کار بکنی ولاتون کیران جهل نکیران و منکر جاهل کسی که بخواد منکر نکیرن کار بکنه. ولال حوضه و المیزان این نکه تنصح نادانی میگه عرب ناسیحد میگه که منادان نباشی. میگه حوز و میزانم انکار نکن حقیقت داره مثل معصزده نگو میزان حقیقی نیست ترازو نیست چی ترازو میشه ما در احادیث داریم اعمالمون ترازو میشه ما در... ما در احادیث داریم که انسان خودش ترازو هم میشه ما در احادیث داریم که صحیفه اعمالمون ترازو میشه همه اینها را داریم چطوره چگوناست ما نمیدونیم علی رسول بلاغ و علینا هم به نسبت صحایف اعمال هم خود اعمال و هم اجساد همه اینها ترازو میشن چنان چه در حادیث اومده و ترازی هم موازین هم موازین قسم حقیقیه نه اینکه مجازی باشه و بخوام تعبیلش بکنیم و همچنین حوض ولل حوض حوض در صحنه محشر بعد از این که انسان در قب خوابنده میشه و از رو میاد که ما گفتیم قبلا اشاره کردیم که انسان وقتی که از غبیرا بیرو میاد صفاتن غرلا که خدمت نشده و لختوریان اونجا هست که هر کسی میره وارد حوض بیامبر خودش بشه رسول الله صلی الله علیه و اسم حوضش کوثر و رودی که از بهش سرچشمه میگیره رود کوثر از کجا سرچشمه میگیره از رود بهشتی چه رودی رود کوثر اون رود کوثر میشه در در در سحنه محشر اون روزی که یوم تبدل الارض و غیر الارض این زمین این زمین نیست زمین دیگری هست که در رباطه آمده زمین سفید رنگ میشه و تمامی کوها و دریها از بین میرن اونجا هست که خداوند حوزهای قرار میده اما معنی حوضم میدونیم مثل استقر قرار میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سر اون حوز نشسته و اصحابش وارد میکنه فرودن چطور میفهمی گفت از آثار بزرغ از آثار عبادتشون کسانی هم رانده میشن که اهل بدعتن رانده میشن و از امت محمد کسانی که واردش میشن اگر آب بنوشن دیگه هیچ وقتش نلب نمیشوند. بلو فرماشه فرقش اینه که حوز یک چیز خاصیه که اگر اسم کوسر بهش داده شده به خاطر آبی هست از رود کوسر که وارد این حوز میشوند. اگر گفتی میشه حوز که کوسر به نسبت رودی که از بهشت در چشم میگیره و در اون حوز او سرازیر میشه. این نقطه نخل توتر منظور چیه؟ اون رود توسنی که که خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشت داده. از اون رود سرازیر میشه در بهشت. حوز بهشت هر کس که وارد بهشت نشده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از رودهای بهشتی که شما در دنیا دارید چند تا روده؟ 4 تا. مثل نیل، درسته؟ و فرات. اینها رودهایی هستند که از کجا سرچشمه میگیرن؟ از بهشت. درسته؟ چطوری؟ کسی بیتونه عقلن بگی؟ چطوری؟ هیچ کسی بیتونه بگه درست؟ اونجا هم هم بهش بهشت وارد نشده ولی اینکه خداون ارتباطی گذاشته بین بهشت و حوض رسول الله که از اونجا همونطور که در دنیا اینجا داریم که نیل از بهشت سر تشنی میگیره اونجا هم حوض از کجا سر میگیره آبش؟ از بهشت خدا يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه. اعتقد اشتباش كه بفضل من نتج كثاني كمثل زغال فختي, فختي والسختي شدان كثاني كآخرين الجهنم جهنميانا أز مؤمنين من كان فی قلبی مثقال و حبت و من یعنی ایمان یک ذره ایمان در قلبشه اونها آخرین ها هستن که مثل اینها پخته شدن سیاه شدن میان در رودی از رودهای بهشتی شسته میشن و دوباره میروین سبز میشن میشن انسانی سالم اونها آخرین کسانی هستن دوباره وارد میشن بعد از اون چی میشه؟ خداون را، به شکل یک بازی یا گسفندی میاد میاد زبش میکنه و دیگه خداوند داد میزند فریاد ریاد میزند که دیگه بعد از این مرگی نیست این دلیل بر چیه؟ جهنم و بهش فنا نمیشند دیگه بعد از اون دیگه مرگی نیست جهنمیان باید بسوزن و بهشتیان باید در نعیم به سر ببرن این حدیث از یک جانب رد بر کسانی است که قائل به فنا بشه جهنم هست. از جهتی دیگر رد بر کسانی است که مرتکب کبیره را تصویر می کنند. چون اینها به خاطر گناهانشون عذاب می کشیدند و خداوند به خاطر اون ذره ایمانی که در قلبشون هست اونها را نجات میدهد. به خاطر یک ذره ایمان وقول يخرج الله العظيم بفضله فضل منته قدس رحمة چرا فضل دو به دلیل الله عليه الله علیه و رسول الله میگه که همه بر ان الله برحمته الله منم یعنی فضل خودش رو رحمت خودش رو برمسر راجع نکنه منم هم جهنبیم بس ما نیاز به فضل داریم رحمت خدا داریم آیا فرق بین فضل و عد آیا تبعیزه این دخالت در کار خداست دخالت در کار خدا یهدی من يشا. درست درسته؟ من یهده الله فلا مدلل و من یهدل فلا هدیه هاد. این جزد تقدیرات کونیه ما نه هدایتش نیست مانع هدایتش اگر خودش نخواد خودش نخواد قلبش قبول بکنه هر چقدر تو بگی نمیشد و مقدر کرده و من یقبل خدا نوشته بر اینکه گمرا بشه الا اینکه خودش اراده بکنه و قلبش رو باز بکنه و کسی که هم هدایت شده باشه اگر شب و روز بیان هم بزنه سر گردن به کافر بشه نمیشه الا اینکه از یک به اکراه اگر باشه ولی قلبا چون ایمان داره. یقین داره به خدامون ان الله ابا ان ما شوبه شوبه جوابش نه به واحت يا باش اين قتل اولاً شرك شرك ميشه اسمش چي مي‌گنداش؟ خدا مي‌گه ان اللَّهَ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اين اولي شرك اكبر يا كفر اكبره اگر كفر اكبر يا شرك اكبر چرا قصاص مي‌شه اين يكي قاتل ام چرا قصاص مي‌شه و چرا رسول الله صلي الله عليه وسلم مي‌فرمايد اگر قصاص شود ديگه گناهي باز شده نبا دون اج بخش دی میشود می نکوف بخشنی است ان الله لا يقرايش هیچ وقت خدا کو خروش دسترا نمی باشه خب این یه قسمتش قسمت دوم این الله ابا ان يقرا للقاتل در شان کی عثمانه که وقتی که اون شخصی که غفلا الهله اورا کشت و ما نذر اساس شقاتش که دهبل فلان شخص لا غفلا این درو کشت رسونا رو حنجری شققتن قلبه ان الله ابا يقتل قاتل ان الله ابا يقتل قاتل ان الله ابا يقتل قاتل بكيدر میگه دوسامن خب الان اسامن خالد مخلد در جهنم توبهش پذیرفته نمیشه اگر تجرفت نمیشود اگر خالد مخلد در جهنم باشه پس چه به رسول الله قبل از وفاتش او را سرلشکر مسلمانان قرار میده میگه درست که ولی مؤمنین قرار بده که بفرسته دست به جهاد کافر تعیین میکنه برای جهاد با طب اخذ دميان شأن ورود حديث يكثرهه علاج يكثرهه راهاي درمان اين مرضي که در عقل مو هست اين مرضه الشيخ بياد بيقول العبره بالعمم لا بوجان ليس من البر الصيام في السفر العبره بخصوص السبب جوعك مش بل حسب ورود حديث اگر ظاهر ظاهر ليس من البر الصيام في السفر رسول مش محكوم ورود ميگرفت بس لكن تتقريباً عن أن تنعي العبرة بأمو الله العبرة بخصوص السبب عبرة بخصوص السبب عبرة بخصوص السبب سبب مشخص غير هذا إذا ما أحدث يدري حديث المفلس استدرون لمن المفلس قال المفلس في فيرا من لجرهم الأدنار قال المفلس من أمة مية يوم القيمة بحسنات كالجبال وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته مفلس کرد از امت من کسی که میاد به آن وای کو حسنات کافر روز قیامت به حسنات بسکوه میاد. بعدیک از امت من این امتش کیه؟ این امت کتک داده، این امت فرش داده و دیگری رو قاتل کرده، کشته. خب آنات کشته است. چطور امت محمد نه امت محمد باشه؟ چون جزء کفاره، جزء مشرکینه. رسولان میگن امت منه. و آنات کافر مشرکه چرا به حسناتی مثل کو معتدل جبال؟ نه بتعاملش ابا ان منثوره بشه خب این نقای قران خدا میگه اعمال کفار راه با ان منثوره قرار می گیره روز قیامت بیان چیزی نداره مثل روح عمل داره وقش وقصه هذا بعد تو ترازو هذا من حسناته وهذا من حسناته بنامی قاعده عبرات به آخر اخره لفظه اخرش گفتم ما في النار ببا با گناهان شخص حالا در جهنم میشه چون فلانی کرده به این نوشتن چون در حقش غیبت کرده و توهمات زده و فلان کرده، خالد و مخلد میشه با گناهانی کش. خیر حاشا و کلدا. همه از امت محمد هم حسنات داره و کسی که امت محمد باشه یک روزی وارد دیش شد حتی گرچه یک ذره از ایمان در قلبش باشه. بله ابله خود خصوصی سبب. بر خصوص سبب ما منظورم خصوص سبب این نیست که قدران به اسامیش بگذره. ما میگیم یعنی به سبب برودش. خصوص سبب در ورودش. یعنی ورود با توجه به قضیه‌ای که رخ داد که رسول الله قصاص نگرفت سر مجازات اسامه حکم ردت رو براش اجرا نکرد و بعدا چون بحثی که میشه بحث میگن که توبه‌جویی برطرف نمیشه حالا بعدا میان میگن که بله اون شخصی که 9900 رو کشته بود اون مال شرع ما قبل ماست و میان ناپرید اگر ما این حرف رو بزنیم بگیم قاتل تو به نداره قاتل خالد مخلد در جهنم میوه فلان و فنا. خب بچه‌ها یک قدمو رو کش شما ناپرید بحثی که رسول اون حدیث 99 تر میگه برای چی؟ برای اینکه اگر ذره توبه رو ببندی شخص میگه من یعنی فرقصم جهنم میشدم. خب صدتا دیگه رو میگوشن. میام اینجا توی مسجد قدوار میمندم صد نفر دیگه رو من که جهنم میام جهنم میام. بس ذره توبه رو نباید ببندی. کی میبنده؟ دوست خدا. توقت نه تو. تو الان کفایت میکنیم 5 دقیقه بعد دوباره ادامه میدیم. و آل محمد.